فصل چهار دو ماه بعد از نامزدیمان بی نهایت شیرین و سریع گذشت. یک صبح تا ظهر که محمد را نمیدیدم انگار یک قرن بود و وقتی برمیگشت نگاه مشتاق و صدای گرمش تمام آرامش دنیا را با خودش میآورد. هر چه میگذشت وابستگیم به محمد بیشتر و بیشتر میشد من که روز اول زوق می کردم که با این ازدواج از ذری جدا نمی شدم. حالا با ذری هم که بودم همه گه حواسم بیش محمد بود مخصوصاً مواقعی که نبود وقتی نبود حوصله هیچ کاری را نداشتم ولی وقتی بود حتی اگر پیش من نبود و مشغول درس خواندن یا حرف زدن با دیگران یا کارهای خودش بود همین که احساس می کردم نزدیکم است خیالم راحت می شد و دلم گرم ماه رمضان آن سال قشنگترین ماه رمضان عمرم بود همه چیز زیبا بود سفره‌های های افتاری با سلیقه مادرم دعاهای از ته دل خانوم جون که کنار سفره افتار دست به دعا بر می داشت و همه اول باید دعا می کردند و توی استکان های کمرباری که خانوم جون آب جوش می و بعد غذا می‌خوردند. صدای ربنا که از دورها فضا را معطر کرد و مرا وامی داشت از ته دل سر به آسمان بردارم و خدا را شاکر باشم عشق این تجلی انوار بینهایت خداوندی که قلبم را به سجود و شکر وامی داشت و جمع خانواده خوشبخت من که محمد را مثل پسرشان دوست داشتند و پذیرفته بودند شب‌هایی که تا سحر با محمد بیدار می‌ماندم و همانطور که سرم روی بازویش بود و دستم توی دستش برایم از آینده میگفت و من مثل بچهی که به قشنگ ترین لالایی دنیا گوش کند احساس امنیت شیرینی می کردم که قابل وصف نیست دیگر صحرها گیج و خوابالود نبودم محبت و عشق همراه با جوانی نیروی مافوق تصور به وجود می آورد و من آنقدر خوشبخت بودم که از هر دوی آنها صاحب بینهایت شده بودم. علاقه وافر آقا جون و مادرم به محمد از طرفی و دوستی امیر با محمد از طرف دیگر محبت بزرگ دیگری بود. با اینکه از اول خودشان قرار گذاشته بودند که ما فقط نامزد باشیم و محمد شبها خانه ما نماند با اصرار خود آقا جون و مادر تقریبا از شب عقد به بعد محمد دیگر به خانه خودشان نرفت این بود که محترم خانم گهگاه به شوخی می گفت محمد، مادر اگه وقت کردی یه سرم بیه خونه خودمون مهمونی ماه رمضان به سرعت گذشت یادم است توی شهریور ماه بود تقریبا دو ماه از عقد ما میگذشت که یک شب جمعه همه برای شام خانه هاجاغ دعوت داشتیم به پیشنهاد آقا شوهر خواهر محمد که معروف بود اهل سفر است و به جاهای خوش آب و هوا علاقه دارد، قرار شد دسته جمعی به سفری دو سه روزه برویم. وقتی آقا جون و هاجاقا هم موافقتشان را اعلام کردند، همه به این نتیجه رسیدند که برنامه سفر هم با آقا باشد. آقا که در ضمن خیلی خوش مشرف و شوخ هم بود، با اشاره دست همه را ساکت کرد و گفت من حرفی ندارم میبرمتون یه جایی که از قشنگی و خوش آب و هوایی لنگه نداره منتها بیشتر برای حال آقایون خوبه صدای اعتراض خانم که بلند شد آقای دستش را بلند کرد در حالی که حالت چشمهایش حاکی از شیطنت و شوخی بود گفت با عرض معذرت از حاج خانوما اینجا که میخوام ببرمتون جایست در دماوند به نام دالان بهشت و بیشتر به درد حال آقایونی میخوره که چند وقته دارن جهنم و مزه مزه میکنن و بعد به خودش و محمد و مهدی اشاره کرد صدای قه قاه خنده ای از ته دل مردها و اعتراض خانم ها با هم قاطی شده بود فاطمه خانوم معترستر از همه گفت حالا که اینطوره ما اصلاً نمیاییم. صدای جر و بحث و شلوقی بالا گرفته بود که آقاجون میانه را گرفت و گفت اصلا بدون خانوما بهشت هم فایده نداره. خوبه؟ آقا اینقدر سر صدا نکنین سرمون رفت. خانم جون هم با شیرین زبونی گفت: آقا رضا، فکر یک ساعت دیگه هم که با خانم تنها میشی باشا. کاری نکن مادر جون که همون جهنم آرزو کنی. همه و از همه بیشتر آقا زدن زیر خنده. به هر حال قرار شد اصر چهارشنبه هفته بعد راه بیفتیم و جمعه اصر برگردیم. سرانجام روز چهارشنبه رسید و همه در تدارک آماده کردن وسایل بودیم. خانم جون مرتب سفارش می کرد. نه نه عرق نره. به مادرت بگو نباتم بذاره، لازم میشه. کهتری منو یادتون نره. یه خورده ترشی هم بردارین و؟ خلاص هر چیزی ممکن بود لازم شود و ما فراموش کنیم خانم جون یادآوری میکرد. بعد از ظهر بود که محمد برگشت. دم پله های اتاق خانم جون ایستاده بود و داشت در جواب خانم جون که میپرسید ناهار خورده یا نه؟ می گفت که آنقدر خسته و گرما زده است که ترجیح می دهد اگر کاری نیست فقط کمی استراحت کند. امیر با خنده گفت: «گرما که کاری نداره ببین اینطوری خنک میشی. و از آن طرف حوز با کف دستهایش شروع کرد به آب پاشیدن به من که داشتم شیشه عرق نعنایی را میشستم که از زیر زمین آورده بودم و رویش پر از گرد و خاک بود. من که دمپایی هایم ابری بود خواستم فرار کنم که پایم روی آبها لیس خورد و محکم خوردم زمین و بطری خورد شد. خانم جون از دست ما عصبانی بود و من از کاری که امیر کرده بود دلخور بودم. محمد همانطور که برای بلند شدن کمکم می کرد با خنده گفت خیلی خوب، عیبی نداره، مواظب با شیشه توی دست و پات نره. خانم جون با غذب گفت ببین چطوری یک شیشه دربست رو از بین بردینا. اینو میگن شوخی بیمزه. امیر خندان گفت. نه خیر. اینو میگن دختر بی دست و پا. خانم جون فوری گفت. خب ببینم حالا میتونی یه شر دیگه بپا یا نه. پاشو برو یه شیشه دیگه وردار بیار بزار دم دست یادمون نره. تو هم ماده اون شیشه ها رو جمع کن توی پای کسی نره. امیر همانطور که از پله زیرزمین زمین پایین میرفت هنوز داشت میخندید. یک آن دلم خواست تلافی کارش را بکنم. به جای جارو یک ظرف آب خنک برداشتم و برگشتم. امیر روی دومین پله بود که بی هوا آب را رو ریختم رویش. امیر که که خورده بود نفس بریده داد زد، مگه دستم بهت نرسه. و دوید و من جیغ زنان بیان که حواسن به جلوی پایم باشد فرار کردم. فریاد محمد و خانم جون با هم بلند شد. مهناز جلوی پات. ولی دیگر دیر شده بود. نیمه ی که سر بطری که کف حیات بود و من به ضرب پایم را رویش گذاشته بودم همراه کف نازو که دن پای سینه پایم را شکافت. و فریادم از سوزش و درد بلند شد. مادرم که با صدای جیغ سراسیمه از ساختمان بیرون دویده بود با دست و امیر و خانم جون با عصبانیت دعوایم میکردند. و من که از درد کلافه شده بودم فقط لبم را گاز می گرفتم که بی صدا گریه کنم. محمد که با نگرانی و خشم به امیر قرقر می کرد به مادرم که مرتب پشت دستش می زد گفت مادرجون یه پارچه تمیز بدین پاشو ببندم فایده نداره باید ببریمش بیمارستان. پایم را بست و بقلم کرد و به امیر گفت زود باش دیگه چرا منو نگاه می مامان دست پاچه و حل میگفت امیر بدو محمد مادر تنها بلندش نکن وای سب کنین منم بیام خلاصه آن روز پایم دوازده تا بخیه خورد و من چقدر اشک گرفتم. موقع بخیه زدن، محمد هم سرم را توی سینه گرفته بود و هم رویش را برگردانده بود و سعی می کرد مرا که از درد به خودم می پیچم آرام کند. وقتی پانسمان پایم تمام شد، دکتر گفت باید چند روز استراحت کنه و پاش رو روی زمین نذاره. سینه پاس بهش فشار بیاد دوباره دهن باز می دو روز دیگه برای تجدید پانسمان بیارینش، مخصوصا تا پانسمانه اول اصلا پاش رو روی زمین نذاره. تفلک مادرم در اتاق که باز شد با رنگ و روی پریده و حراسان وارد شد و با دیدن پایم و چشمهای اشگالودم به امیر تشر زد. هزار دفعه گفتم شوخی معنی نکنین. مگه به خرجتون میره؟ محمد که داشت از روی تخت بلندم میکرد گفت حالا که به خیر گذشت مادر جون دیگه هرث و جوش نخوریم من که حالم بهتر بود از اینکه مرا رو روی دست ببرد خجالت میکشیدم گفتم محمد بزارم زمین خودم میام با خنده گفت خودت داشتی میومدی که اینطوری شد دیگه امیر فوری رو به مادر گفت بفرمایین دیدی تقصیر خودشه خدا به داد این محمد بیچاره برسه با این زن. خلاصه به خانه رسیدیم. همه نگران و چشم به راه بودند. آقا جون و محترم خانم و خانم جون یک صدا می گفتند که با این اوضا دیگر برنامه باشد برای هفته بعد. ولی محمد محکم و قاطع گفت: نه. Nah, شما برین. من پیشش میمونم. مامان و آقا جون نه خیالشون راحت بود که بروند، نه رویشان میشد بگویند نه. بحث در گرفته بود و هرکس چیزی میگفت. سرانجام آقا رضا با خنده گفت: والله به خدا بینا اینا اینطوری بیشتر خوش میگذره. نگران چی هستین؟ همه خندیدند و بالاخره با اصرار محمد راهی شدند. توی حیات روی تخت نشسته بودیم که خداحافظی کردند. مادر و خانم جون آخر از همه با دل نگرانی و کلی سفارش رفتند و امیر قبل از اینکه در را ببندد به شوخی گفت: محمد ناراحت نباش عوضش بچه دارید خوب میشه دلم میخواست کله اش رو بکنم تقصیر او بود که نتوانستم بروم یک دفعه دلم گرفت دلم میخواست من هم بروم با خود گفتم خوش به حالشون. حالا به اونها چقدر خوش میگذره درد را بهانه کردم و دوباره بغز کردم محمد در حالی که با دقت دوی چشمهایم نگاه میکرد گفت راستشو بگو به خاطر پات ناراحتی یا اینکه نشد بری مثل بچه ها لب برچیدم و گفتم میخواستم برم خندید و دستم رو توی دستایش گرفت اگه قول بدم خودم ببرمت کافیه؟ کی؟ هر وقت تو بگی من فقط قول میدم اگه یه روز از عمرم مونده باشه خودم ببرمت تا این دالانه بهشتو ببینی خوبه؟ حالا دیگه اخماتو باز میکنی؟ خودت چی؟ دوست نداشتی بری؟ همونطور که دستم توی دستش بود پیشانیم رو بوسید و گفت من خود بهشتو دارم واسه دالانش حسرت بخورم الان هم که سالها گذشته، آن منظره، و حرف آن روز محمد از یادم نمی رفت. آن دو چه شیرین و سریع گذشت و من هم مثل محمد به کلی دالان بهشت را فراموش کردم. با وجود محمد بهشت در کنارم و در قلبم بود. خوب به یاد دارم. شب شد، این احساس که در خانه غیر از من و او کسی نیست باعث شد حال به خصوصی از حراس و استراب به من دست دهد. شوخی های سربسته فاطمه خانم و آقا و سفارش های مادر و خانم جونیادم افتاد و دل ی عجیبی به دلم جنگ زد. محمدم ما خوند سرد و معمولی پرسید. مهناز توی اتاق خودت بخوابیم یا اینجا؟ توی حیات؟ آره، توی پشه بند، عیبی داره؟ گرفتار دل هره ای ناشناخته شدم همانطور که او رخت خواب را مرتب می کرد فکر می‌کردم کاش مادرم و سایرین بودند با اینکه تا آن روز متوجه شده بودم که محمد هری می را بین خودمان رعایت می‌کند، باز آن شب حس عجیبی داشتم محمد اما هم مثل همیشه بود یک بالش سیر پایم گذاشت و کنارم دراز کشید. دستم را توی دستش گرفت و بوسید و پرسید. پات بهتره؟ سرم را تکان دادم که یعنی آره. پس از چی نیم نیمخیص شده بود و توی صورتم نگاه می کرد. وقتی توی چشمهایم دقیق می شد احساس می کردم افکارم را می و حول می شدم. نه چیزی نیست. اگه نمیخوای بگی نگو، عیبی نداره ولی نگو نه. بعد درست کشید خنده هم گرفت ولی ترجیح دادم سکوت کنم. محمد هم برخلاف انتظار دیگر چیزی نگفت. دستم در دستش بود که خوابمان برد نیمه شب با صدای جیخ گربه از خواب پریدم. سایه درختها و شاخه ها تاریکی هوا و این فکر که توی خانه غیر از ما کسی نیست خواب را از سرم پراند و وحشت برم داشت آرام صدایش زدم محمد، محمد چشمایش نیمه باز شد می درسم، تو رو خود بیدار شد دستش را دراز کرد و آرام مرا گرفت توی بقلش و دست دیگرش را گذاشت زیر سرم همانطور که پشتم به او بود خودم را توی بازوانش قایم کردم خوابالوت پرسید: از چی میترسی؟ نمیتونم با خنده که توی صدایش بود گفت اخاب من اینجا چقدر حرارت تن و آغوشش آرامش بخش بود و رفتار آن شب محمد برایم چقدر شیرین بود او همونطور که آرام آرام روهم را با محبتش آشنا میکرد جسمم را هم به خودش عادت میداد و این برایم بی نهایت لذت بخش بود نمیدانم چند درصد از زنها این شانس را داشتند و چشیدند. نخست باید روح زن تصاحب شود تا خوشبخت باشد هیچ چیز برای یک زن تلختر از این نیست که جسمش را بدون حس کردن نیازهای روحیش تصاحب کنند و این اشتباهی است که در طول قرون بارها و بارها تکرار و نادیده گرفته شده. من این حقیقت را سالها بعد فهمیدم. وقتی که دیگر دیر شده بود. فهمیدم که جزو معدود زنهای خوشبختی بودم که مردش سر زر, زر روحش را تصاحب می کند. خودم را می خواست، نه جسمم را. و این بود که مرا بیش از پیش به محمد وابسته می کرد. امنیت خاطری که او با رفتارش در من به وجود آورد، از من در آن سن کم زنی دیگر ساخت. هرچه او در وصل جسمانی شتاب به خنج نمیداد، بیشتر فاتح وجود و هستی من می شد. درست مثل فاتحی که به دلیل لیاقت و کاردانی و سزاواریش شهری را به او پیشکش کنند. فرق است بین او با کسی که به زور و جبر و اکراه مالک سرزمینی می شود و در نهایت نبران سرزمین حاکم می شود و نبر قلب مردمش. محمد از این طریق چنان فاتح تمام وجود من شد که سالها بعد وقتی که دیگر از دستش دادم فهمیدم قادر نخواهم بود وجودم را غیر از او به کسی تقدیم کنم. گذشته زن از جسمش یک نوع ایسار و از خودگذشتگی است. نکام و کسب لذت. و من توانایی این از خودگذشتگی را جز در مقابل او برای همیشه از دست داده بودم. سالها بعد وقتی که به روابط عجیب و غریبی که هم سنو سالهایم اسمش را اشق و محبت گذاشته بودند دقیق می شدم، از این همه تنزل بشر تا حد حیوانیت، تعجب می کردم و منزجر می شدم. دلم به حال تمام کسانی می که براوردن غریزه حیوانی را با عشق یکسان می انگارند. لذت و کامجویی کجا و عشق و محبت پاک آسمانی کجا. شاید برای عشق روحی و معنوی در انتها وصل جسمانی یک مکمل باشد ولی وصل جسمانی در آغاز و ابتدا راه را بر عشق واقعی خواهد بست.